به نام خدا کتاب افسانه های آفریقایی های کوزهی نویسنده کتلین آرنوت ترجمه رزوان دسفودی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا آبدی داستان عرباب مار در زمان بسیار قدیم تو دهکده که کنار رودی بود دو خواهر با پدرشون زندگی میکردن دخترا دیگه بزرگ شده و به سن ازدواج رسیده بودن پدرم که وظیفشون میدونست برای اونا دنبال شوهر میگشت اما متاسفانه کسی به خاستگاریشون نمی اومد. برای همین، پدر به فکر افتاد که سری به دهکده های دیگه بزنه و اعلان کنه که دو تا دختر دم بخت داره. مرد قایقش رو برداشت و به اون طرف رود رفت. بعد از مدتی پیاده روی به دهکده ای رسید که مردمش همه شاد و خوشحال بودن. اونا با روی باز از اون استقبال کردن و گفتن خوش اومدی، خبر تازه چی داری؟ مرد گفت: «خبر جدید و مهمی ندارم. شما چطور؟ اونا گفتن: ارباب ما دنبال همسر میگرده. این تنها خبریه که داریم. مرد چیزی رو که باید میفهمید فهمیده بود. به اونا گفت: «فردا همسری رو بر یه رئیس شما میفرستم. بعد دوباره از رود گذشت و در حالی که دائم از خوشحالی می خندید به خونش برگشت. وقتی دختر از مزرعه برگشتن، پدر اونا رو صدا زد و گفت بالاخره مردی رو که شایستگی ازدواج با یکی از شما رو داشته باشه، پیدا کردم. رئیس دهکده همسایه دنبال همسر میگرده. حالا کدومتون رو به اون دهکده بفرستم؟ دختر بزرگتر با عجله گفت خب معلومه منو چون من بزرگترم. پدر گفت باشه فردا همه را خبر میکنم و تو رو راهی خونه شوهر میکنم. دختر با خیر سری جواب داد شما نباید چنین کاری بکنید چون من میخوام خودم تنها به خونه شوهرم برم. تو اون قسمت آفریقا رسم بود که دخترا همیشه همراه گروهی از مردم با شادی و هلهله به خونه همسرشون برن. پدر با اینکه میدونست دخترش از کودکی یه دنده و مقرور بوده باز تعجب کرد و گفت دخترم، هیچ دختری تا امروز تنها به عروسیش نرفته. این سنت و رسم ماست. دختر گفت پس من این سنتو می شکنم. اگه قراشه کسی با من بیاد اصلا نمیرم. رم. بعد پدر به این نتیجه رسید که هر اندازه به دخترش اصرار کنه، اون تصمیمشو عوض نمیکنه. پس موافقت کرد که اون تنها بره. روز بعد صبح زود دختر آمادهی سفر شد. پدر اونو به اون سوی رود برد و راه و نشونش داد. بعد خودش غمگین و ناراحت به خونه برگشت. دختر بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه به راهش ادامه داد. بعد از مدت کوتاهی به یه موشی رسید که روی پاهای عقبش ایستاده بود و پنجه های جلوشو به هم میمالید. موش معدبانه از اون پرسید میخوای راه خونه یه رئیس ده رو به تو نشون بدم؟ دختر به راهش ادامه داد و حتی نزدیک بود که موشو زیر پاش له کنه. در حالی که به راهش ادامه میداد گفت از سر راه من برو کنار من به کمک تو احتیاجی ندارم. و از اونجا دور شد موش با فریاد گفت دختر بختت سیاه دختر کمی که رفت به یه قورباغه رسید که روی سنگی کنار جاده نشسته بود قورباغه گفت میخوای راه و نشونت بدم؟ دختر لگدی به قورباغه کوبید و اونو از روی سنگ به زمین انداخت بعد گفت با من حرف نزن من قرار زن رئیس دهکده بشم. قرباقه گفت پس بختت سیاه. چیزی نگذش که دختر احساس خستگی کرد و زیر سایه درختی نشست تا استراحت کنه. از دور صدای بوزایی که بابه می کردن به گوش می رسید. همون موقع دسته ای از بزا که پسر کوچیکی چوپان اونا بود از کنار اون رد شد. پسر معدبانه گفت، سلام خواهر، میخوای به سفر طولانی بری؟ دختر جواب داد، به تو چه ربطی داره؟ پسر گفت، با خودم فکر کردم که اگه میخوای به سفر طولانی بری، ممکنه برای راحتی آزوغهی همراه داشته باشی و کمی از اون رو هم به من بدی، آخه خیلی گرسنم دختر جواب داد من غذایی همراه هم ندارم اما اگه داشتمم به تو چیزی نمیدادم. پسر نگاهی به اون کرد و با عجله به طرف بزاشت و اید. بعد گفت بختت سیاه. دختر بی توجه به پسر بلافاصله بلند شد و به راهش ادامه داد. چیزی نگذشت که با یه پیرزنی رو برو شد. پیرزن گفت سلام دخترم. میخوام به تو چند تا نصیحت بکنم. در راه به درختایی میرسی که به تو خواهند خندید. تو نباید در تلافی به اونا بخندی. بعد از اون به ظرف شیری میرسی اما به هیچ وجه نباید اونو بخوری. بعد از ظرف به یه مردی برمیخوری که سرشو زیر بغل گرفته. اگه به تو آب تعارف کرد هرگز قبول نکن. دختر در حالی که پیرزن رو حل میداد بی ادبانه گفت ساکت باش موجود زشت پیر. من نمی کسی نصیحتم کنه. پیرزن در حالی که می لرزید گفت اگه به حرفای من گوش نکنی بختت سیاه میشه. دختر بی توجه به حرفای اون به راهش ادامه داد. همونطور که پیرزن گفته بود بعد از مدتی دختر به چند درخت رسید. صدای خنده از درختا بلند شد. دختر فریاد زد: بس کنید، به من نخندید. اما درخت‌ها همچنان به او میخندیدند. دختر که عصبانی شده بود، برای تلافی با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و از اونا دور شد. کمی بعد، چشم دختر به ظرفی افتاد که از پوست بز درست شده بود. وقتی اونو بلند کرد، متوجه شد که توی اون شیره یعنی همون چیزی که دختر بسیار به اون علاقه داشت. اون با خوشحالی گفت چه اقبال خوبی بعد از این سفر طولانی حسابی تشنم شده و شیر و سر کشید و ظرفش رو روی بوته ها انداخت. بعدم به راهش ادامه داد. کمی بعد به بیشه رسید. اونجا با ای روبرو شد که اونو سر جاش میخکوب کرد. مردی رو دید که سرش رو زیر بغلش گذاشته بود. چشمای سر نگاهی به اون کردن و دهان با اون شروع به صحبت کرد. مرد پرسید دخترم کمی آب میخوای؟ و با دستی که آزاد بود کوزه آب رو به طرف اون گرفت. دختر که چندانم تشنش نبود تصمیم گرفت آب رو مزه کنه و ببینه که گباراز یا نه. وقتی جوری از آب رو نوشید، از مزدهش خوشش اومد و تمام آب گوزه رو سر کشید. بعد بدون اینکه که تشکری از مرد بکنه به راهش ادامه داد. بعد از گذشتن از پیچی دختر چشمش به یه دهکده افتاد که به دنبالش میگشت و فهمید که سفرش تقریبا به آخر رسیده. از رود رد شد اونجا، دختر کوچیکی رو دید که خم شده بود و کوزش رو آب می کرد. دختر کوچیک به اون سلامی کرد و پرسید کجا می دختر مغرور بدون اینکه نگاهی به اون بندازه در جوابش گفت میرم تا با رئیس دهکده شما ازدواج کنم. تو هم حق نداری با من صحبت کنی چون من از تو بزرگتر و مهمترم. دختر مغرور نمی دونست دختر کوچیک خواهر رئیس قبیل است. دختر به اون گفت، بذار به تو نصیحت کنم. از این طرف وارد دهکده نشد چون بد بالی میاره از طرف دیگه برو. اون درختارو دور بزن و داخل دهکده شو. دختر بی به حرفای اون سرشو بالا گرفت و از اولین راه دهکده وارد شد. به محض ورودش تموم زنای دهکده دورش حلقه زدن تا بفهمن اون کیه و برای چی به اونجا اومده. دختر گفت من اومدم تا با رئیس قبیله ازدواج کنم. از سر را هم کنار برید تا قدری استراحت کنم. اونا پرسیدند تو چه جور عروسی هستی که تنها اومدی و هیچ کس همراه تو نیومده؟ دختر بدون اینکه به اونا جوابی بده زیر سایه کُلبی نشست و پاهای خسته شو دراز کرد. همون موقع پیرزنی به سراغ دختر اومد و گفت اگه میخوای همسر رئیس قبیله ما بشی، باید مثل همه زنای خوب شام شام شوهرتو آماده کنی. دختر پرسید از کجا میتونم ارزن پیدا کنم تا برای شوهرم شام بپزم زنها به اون ارزن دادن و گفتن این ارزن. حالا با هاونی که اونجاست، اونو بکوب. دختر مثل زنای دیگه که ساعتها و میکوبیدند، اونو نکوبید بلکه نیمه کاره رهاش کرد ارزنا دروش و ذبر بودن دختر با همون ارزنای نیمه کوبیده یه نون پخت زنای دیگه وقتی غذا پختن اونو دیدن به گوشهی رفتن و خندیدن و اونو مسخره کردن هنگام غروب باد قوی شروع به وزیدن کرد سقف به لرزه در اومد دختر از ترس به یه دیوار گلی چسبید ناگهان یه مار بزرگی که پنج تا داشت جلوی در ظاهر شد و چنبره زد. بعد گفت شامی که پختی بیار مار در حالی که و تو دهانش میذاش پرسید میدونستی من رئیس دهکده هستم؟ بعد ناگهان فریاد بلند و وحشتناکی کشید و غذا رو از دهنش بیرون ریخت فشفشکنان کنان گفت این غذا بسیار بد پخته شده. من نمیخوام همسری مثل تو داشته باشم. پس تو را خواهم کشت و با ضربهی محکم دختر را از پا را وقتی خبر مرگ دختر به پدرش رسید، اون هنوز نتوانسته بود که شوهری برای دختر کچیکش مپونزانیا پیدا کنه. دختر با التماس به پدرش گفت اجازه بدید حالا من پیش رئیس دهی کده برم. مطمئنم که میتونم اونو راضی کنم. پدر با میلی خیشان و دوستانشو صدا زد و از اونو خواست تا دنبال عروس برن. اونا با خوشحالی به خونه رفتند رفتن تا بهترین لباس رو برای همراهی عروس بپوشن. پدر نوازنده ها رو هم صدا زد تا با اونا همراه بشن. صبح روز بعد سفر آغاز شد. همه در حالی که از رود بزرگ میگذشتن با شادی شروع به خوندن آواز کردند. اونا همون راهی رفتن که دختر بزرگتر رفته بود. اونا هم به موش برخوردن. موش از دختر پرسید. میخوای به تو بگم چطور به اونجا برزی؟ مپنزانیانا فوری سر جاش استاد تا مباد آسیبی به موش برسه. بعد گفت، اون وقت معدبانه استادو به حرف و راه های اون گوش داد. اونا اونقدر رفتن تا به یه دره عمیقی رسیدن. اونجا یه پیرزن زشت نشسته بود که با دیدن اونا با پای لرزان بلند شد و روبروی دختر ایستاد و گفت وقتی به جای رسیدی که جاده دوراهی میشه راه باریکتر رو انتخاب کن چون راه پهتر بدیوم مپونزانیانا گفت ما در بزرگ از راهنمایات متشکرم و حتما به اون عمل خواهم کرد بعد به راهشون ادامه دادند تا اینکه مدتی بعد ناگهان خرگوشی جلوشون ظاهر شد خرگوش سرشو بالا ورد و رو به دختر گفت به آخر سفر چیزی نمونده اما بزار قبل از رسیدن چندتا نصیحت به تو بکنم چیزی نمیگذره که به یه دختر جوونی برمیخوری که کوزش از رود پر میکنه. مراقب باش با اون مهربون باشی. وقتی به دهکده رسیدی، احالی ده به تو یه مقدار ارزن میدن تا با اون برای رئیس دهکده شامی تهیه کنی. سعی کن کارتو کامل انجام بدی. آخرین چیزی که از تو میخوام، اینه که وقتی شوهرتو دیدی، از اون نترسی یا دستکم ترستو نشون ندی. دختر رو به خرگوش کرد و گفت از نصیحتات ممنونم خرگوش کوچیک. سعی میکنم تموم حرفاتو به خاطر بسپارم و به اون عمل کنم. چیزی نگذاشت که با گذشتن از پیچی دهکده نمایان شد. از کنار دهکده رودی میگذشت که دختری جوان با کوزی آب بر روی سرش از کنار اون عبور میکرد. اون همون خواهر رئیس بود. دختر جوان رو به اونا کرد و پرسید: برای چه کاری به اینجا اومدید؟ مپونزانیانا جواب داد: به دهکده میرم و امیدوارم که بتونم همسر رئیس قبیله بشم. دختر جوان گفت: بذار تو رو به طرف کلبه رئیس راهنمایی کنم، اما سعی کن وقتی اونو دیدی نترسی. مپونزانیا به دنبال دختر به راه همه کسایی که برای بدرقش اومده بودن به دنبالش به راه افتادن مردم با شنیدن صدای ساز و هل از خونه‌هاشون بیرون اومدن تا ببینن چه خبری. احالی معدبانه به اونا خوشامد آمد گفتن و براشون غذا اووردن مادر رئیس قبیله به پونزانیانا مقدار ارزند و گفت اگه میخوای همسر خوبی برای رئیس قبیله ما باشی، باید مثل زنای خوب شامی برایش آماده کنی. دختر دست بکار شد و ارزن رو به خوبی کوبید و با اون هنون خوشمزه و خوشتم پخت هنگام غروب باد قوی شروع به وزیدن کرد. خونه به لرزه در اومد. شنید که مردم دهکده می رئیس داره میاد. دختر از ترس به بلرز افتاد اما به یاد آورد که به اون چه نصیحتی کرده بودند حتی وقتی یکی از ستونای سقف به زمین افتاد دختر از ترسش بیرون ندوید و آروم منتظر شوهرش موند دختر با مار بزرگی که دید وارد خونه میشه نزدیک بود فریاد بزنه اما وقتی که مار غذا بلا فاصله و خواست دختر بلافاصله نونیو که پخته بود به اون داد و از چهرش فهمید که از طعم اون خیلی خوشش اومده. مار گفت، اینون خیلی خوش طعمه. آیا تو حاضری همسر من بشی؟ برای یه لحظه، مپونزانیانا مکسی کرد و لال شد. اما وقتی به یاد تمام نصیحت افتاد که دیگران به اون کرده بودن، لبخندی زد و گفت، بله با شما ازدواج میکنم رئیس. با این حرف مپونزانیانا بلافاصله فاصله، گست برراغ مار به زمین افتاد و از میانش مرد جوون و بلندقامتی بیرون اومد. مرد گفت تو با حرفوی شجاعانت تلسم منو شکستی. اون شب تو دهکده جشنی برگزار شد که تا بیس روز ادامه داشت. گاوها قربانی شدن و نوشیدنیا در زرفا ریخته شدن. تمام مدت موسیقی نواخته شد و قلب مردمو شاد کرد. به زودی مپونزانیانا همسر رئیس خوب و ثروتمند دهکده شد. اونا بعد از مدتی صاحب فرزندان زیادی شدند و مردم دهکده هم تونستن به خوبی و خوشی زندگی کنند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانهقصههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده، سفر شاهزادهها و شاهان با اصف تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های ها. همه و همه و همه, همه, و همه در کانال تریگرامی هزار افسان داستان های صوتی ادساین مهران دوستی